ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتلكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وصلم كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهذينهم صب لنا وإن الله لمعالمحسنين وقال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم توسان وساربرانة جرامي انسان اشرف مخلوقات شاختار خلقت و موجودی که احسان الخالقین او رو در احسن تقویم خلق میکنه موجودی که اگر قدردان استعدادها و صلاحیتهای درونی خودش باشه و به با اونها فعلیت ببخشه استعدادهای درون خودش رو شکوفا بکنه خیر البریه میشه بهترین موجود هستی و به جای میرسه که مورد رشک و مباهات ملائکه قرار میگیره. و حقیقت وجودی او رو و مقام قرب او رو هیچ کس نمیتونه از مخلوقات و موجودات دیگه حتی کروبی های آسمان درک بکنه. خدا ملائکه داره. لا یعصون الله ما عمرهم و یفعلون ما یؤمرون. شبان روز اطاعت او رو میکنن و برابر یک تلک به هم زدن نافرمان او نیستند همه تسلیم و منقاد امر او هستند اما خدا انسانی خلق میکنه به عنوان خلیفه و روی زمین و به او هم میگه و ما خلقت الجن والانس الانس الا لیعبدون منم برای عبادت آمدم که های آسمان هم دارن عبادت میکنن چرا الله سبحانه و تعالی وقتی ملائکه‌ای داره که طرفت العینی نافرمانی اون نمی‌کنن این انسان رو باید خلق بکنه انسانی که در او شهوت هم وجود داره انسانی که در او غضب هم وجود داره انسانی که به هدیناه النجدین سر یک دوراهی قرار گرفته دوتا راه واضح و روشن حق انتخاب به او داده شده انسانی که فعل ها فجورها و تقواها بر سر دراهی تقوا و فجور قرار گرفته انسانی که باید یوسف وار در مقابل مفاسد معاو الله بگه و زلیخا و مفاسدی که او به طرف او هیفلت میگه همه رو فدای ی رب العالمین بکنه عبادتی که این انسان میکنه با عبادت ملائکه فرق داره عبادت ملائکه یک عبادت فطری هست مثل دم و بازدم من و شما اونها برای عبادت مشقت اونها برای عبادت مجاهده اونها برای عبادت لازم نیست پا روی نفس بگذارن و از خیلی علائق دنیاوی خودشون و دائیه ها و جازبه های غلط دست بکشند. همونطوری که من و شما در هر دم و بازدم و تنفس خودمون احساس هیچ ای نمی کنیم و این یک فطرت هست ملائکه همینطور تسبیح خدا رو میگن تقدیس و تسبیح خدا مثل تنفس برای اونها راحت به ملائکه خداوندی هر لقبی میتونیم بدین میتونیم به جبرئیل روح الامین بگیم روح القدس بگیم میتونیم عابد بگیم میتونیم ساجد بگیم اما به ملائکه آسمان نمیتونیم بگیم متقی چون اون چیزی که لازمه تقوا هست مبارزه با یک سری جازبه های درون مبارزه با یک سری ها، مبارزه با یک سری شهوات هست متقی کسیه که در اون میل به گناه باشه کشش گناه باشه دورور او او های غلط باشند و همه اینها رو فدای خدا بکنه و اون کسی ملقب لقب متقی میشه و میتونه با تقوا دوستی خدا رو تجربه بکنه ان اولیاء او الا المتقون کسی که همه شهوات رو و همه های غلط رو و همه زمینه‌های فساد رو فدای الله کرده کسی که دل خودش رو خون میکنه به این امید که خونبهای این خون دل ذات الله ها. کسی که افق دین افق دل خودش رو سرخ میکنه تا خورشید قرب خدا از او طلوع بکنه کسی که از شکست آرزوهای خودش و شکستهای قلبی خودش در راه خدا پروایی نداره کسی که پروانوار به همه ناملایمات زمان میگه پروا نه به تنهای مردم میگه پروا نه به سوختن پر خودش میگه پروا نه به ساری خودش میگه پروا نه و از هیچ ملامت ملامت کنندهای پروا نداره این یک پروانه یک شمعه شیدای یک شمعه عاشق یک کوه هست و هرگز حاضر نیست که این میدان رو خالی بکنه به هیچ قیمتی ای بلبل شوریده عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان و آواز نیامد جان میده و آواز عفستو او رب الکعبه است بزل جان میکنه بدل مال میکنه حیثیت فدا میکنه حسی فدا میکنه موجودیت رو قربان میکنه به این امید که الله رو به دست این ملائکه این قدر و محترمان، موقعی که الله سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم رو واتقب الله ابراهیم خلیلا ابراهیم رو به مقام خلت میرسونه در آسمان الله که آسمان سوال میکنند. یالا چه شد که خلیل خودت رو منتخب کردی از ما همه بنده های خودست؟ این بنده منتخب شد، این بنده برگزیده شد، این بنده به مقام خلت رسید، چه شد که از ما به بنده های تو منتخب شد؟ مفسرین، بعضی از مفسرین، علام آلوسی در تخت این آیه میاره قصه ای رو بیان میکنه که الله سبحان و بطاله ملائکه رو به حیعت و شکل یک انسان، پیش حضرت آدم علی... پیش حضرت ابراهیم علیه السلام پیش ابراهیم و سلام فرستاد فقط پیش ابراهیم بگو الله ببین ابراهیم چه میکنه این ملائکه میاد در حالی که سیدنا ابراهیم علیه السلام درو گستان میشن. از یک وادی از یک جایی که دورتر هست لفظ جلالی الله رو به زبان میاره ابراهیم به وقت میاد حکان میخوره کیه که نام محبوب من مطلوب من مولای من رو میاره والذین آمن اشد حبا حب لله این اشد حب و این محبت قلبی شدیدی که ابراهیم با خدا داره اونو به تکان میاره به سمت این صدا حرکت میکنه ظاهرا یک انسانی هست چی گفتی؟ میشه یک مرتبه دیگه بگی او میگه من مجانی نمیگم چی میدی در قبال این الله گفته؟ گفتن؟ میگه یکی از این گوسفندای من چاکترین بیخترین فربحترین انتخاب کن مالتو ولی یک مرتبه دیگه بگو الله. میبروند که اون یک مرتبه دیگه میگه الله اما عاشق اون کسی گوش من نامد شراب حوش من جامت عاشق اون کسیه که این ذکر خدا میگه تا دیگران نمیتونن درک بکنن مقام عشق او رو به او مجنون میگن دیوانه میگن ابراهیم دو مرتبه میگه بگو الله و میگه اگر این دفعه الله بگم چی میگی میگه کل این گوسفندان من همه مال تو یک مرتبه دیگه بگو الله و میگه الله حضرت ابراهیم میگه یک بار دیگه بگو میگه این دفعه به من چی میگی میگه من و همه اولاد من چوپان و خادم تو میشیم فقط یک مرتبه دیگه بگو الله ملائکه او رو اقوش میکشه و میگه من یکی از کروبیهای های آسمانم من ملائکه هستم که برای یک امتحان آمدم ببینم تو با نام جلاله الله چه میکنی تو شایسته مقام خلتی که برای نام الله مال رو دادی چاقو بر حلقوم فرزند کشیدی جن رو بر طبق اخلاص گذاشتی و در آتش نمرودی جان خودت رو بدل این ب... آتش کردی و نظرانه این آتش کردی تو شایسته این مقام این انسان کاری میکنه گای با عشق خودش که ملائکه آسمان هنزله رو در شب اول عروسی غوص میدن و ملقب به غسیل الملائکه میشه این انسان به جایی میرسه که وقتی با این عشق خودش و با این علاقه شدید قلبی خودش نسبت به خالقش از دنیا میره عرش الهی به تکان میاد احتز عرش الرحمن حضرت سعد از دنیا میره عرش خداوندی به تکان میاد این انسان به جایی میرسه که در جایی که برای یک جمع ایمانی شرکت میکنه حفت هم الملائکه ملائکه گرد و گرد او رو میگیره این انسان به جایی میرسه که وقتی در طلب علم و مرضیات خدا و حدود شرعی پا رو از خانه میگذاره بیرون در هر قدم ملائکه بالهای خودشون رو برای اعزاز و اکرام زیر پای او پهن میکنن این انسان به جایی میرسه که ملائکه آسمان هم بر او رشک میبرند و ملائکه آسمان هم بر او مباهات میکنند چرا چون این با همه جذبات درون و احساسات درون خودش برای خدا جنگید این انسان میتوره ملقب به یک لقب زیبا بشه میتونه نام خودش رو متقی ثبت بکنه و در زمره دوستان خدا قرار بگیره در درون انسان یک چیز بسیار خطرناک وجود داره خطر این انقدر زیاد که شیطانم بیشتره برای گمراهی شیطان شیطانی دیگه نیامد چیزی که عزازیل رو خار کرد چیزی که تاوس الملائکه رو ذلیل کرد نفسش بود علمان میگن که نفس انسان از شیطان هم خطرناک چون چیزی که وسیله گمراهی شیطان شد نفس شیطان بود تعاویری که در احادیث نبووت آمده تعالیم روحبخش نبی آمده نسبت به این نفس اعدا عدو سرسخت در دشمن مادر بطها بت بط نفس شماست مادر همه بطهای درون مادر تمام لاتها، حبلها، اوزاها و تمام بتهای بیرون بت درون انسان هست اگر انسان این بط درون خودش رو بتونه بشکنه و با این مقابله بکنه اون موقع تبدیل به یک انسانی تاری ساز میشه تبدیل به یک موجودی میشه که هیچ کس نمیتونه بر او قیمت بگذاره و بهایی بر اون تقییم بکنه اما بدا به حال اون انسانی که بر این نفس اعتماد بکنه. ابراهیم استوره مقاومت، اسطوره مبارزه، اسطوره صبر و پایمردی در احسن و خدا او رو معرفی میکنه. ابعاد مختلف شخصیتی سیدنا یوسف علیه السلام بسیار زیاده. و از مجال حوصله این جلسه ما خارج اما اون چیزی که من میخوام بگم حضرت یوسف علیه السلام و السلام به بشریت فهمون راه کوتاهه تو میتونی از یک چاه به تخت شاهی برپی راهش خیلی کوتاهه اما این وسط باید یک کارهای انجام بدی یک چیزهایی رو باید نشون بدی یک تعلق و رابطه باید داشته باشی وگرنه فاصله چاه تا تخت شاهی خیلی کوتاهه یوسف علیه السلام با عنوان یک عبرمرد و با عنوان یک جوانی که در تجرد و در زمانی که شهوات در وجود او موج میزنه زمینه همه فسادها براش فراهم شده. یک سیری مبتظل نه، یک شبکه ماهوارهای نه، یک سینمای هالیوود سر راهش نیست. یک زمینه فساد و گناه معمولی از شبکه های مجازی جلوش گذاشته نشده بلکه زن یک زنی حسین جمیل صاحب حسب صاحب نسب در حالی که تمام درها رو بسته او رو داره به سمت بدیها دعوت میده قلقت الابراب درها بسته است از انظار عمومی به دوری چشمی تو رو نمیبینه من همه های فساد رو برات مهیا کردم با چشم خودت دیدی که همه درها رو بستم یک در نه ابواب غلقت الاضباب چشمی تو رو نمیبینه رصد نمیشی کسی مراقب اعمال تو نیست تو میتونی خیلی راحت کامجویی بکنی و این لذت لذتجویی بکنی شهوترانی رانی بکنی خیلی راحت میتونی یک موقعیت شهوانی که برات فراهم شده و من برات فراهم کردم و خیلی خوشحال حسرت این دقایق رو بخورند من برای تو معیا کردم اما یوسف در مقابل این زمینه فساد و زمینه گناه چه میکنه فورا معاذ الله چیزی رو نشون میده که الله سبحانه و تعالی این رو در کلام خودش ترسیم میکنه کاش امروز منم به سیدیه متدل میگفتم معاذ الله. کاش امروز منم وقتی که در اتاقهای دربسته سینمای هالیوود جلوم قرار میگیره بگم معاذ الله. کاش امروز منم وقتی که زمینه اقتصاد و گناه برای من فراهم میشه. یوسف وار به همه این مفاسد به همه این گناه ها بگم معاذ الله. کاش همونطور که یوسف به زلیخان نشون داد. اگر تو از بوت خودت شرم میکنی و بر او پارچهی میندازی بوتی که نمیبین و نمیشنوه من چطور از اون اللهی که خودش میگه علم یعلم بان الله یرا از اون که و هو معکم اینما کنتم از اون که در حرج مترصد اعمال من حاست هیچ جا من از او مخفی نیستم چطور من از الله شرم نکنم در حالی که توی زلیخا از یک سنگ و چوب شرم میکنی تو میتونی چشمان خدای خودت رو با یک پرده بپوشونی اما من چشم خدای خودم رو بسیر نمیتونم بپوشم تو دروازه ها رو بستی و جایی قرار گرفتی که از چشم مردم منو دور قرار دادی اما خدای خودم رو چه بکنه کاش امروز منم همونطور که یوسف یک رقابت سالم این میدان رقابت میخواد بر همین الله سبحانه و تعالی دعوت به شتاب میده دعوت به رقابت میده فاستا الخیرات این میدان میدان رقابته جای تنبلا نیست جای بزدلا نیست جای کرکست فتا و روباخ سفتان نیست اینجا جای میدان رقابته باید بدوی بگر عقب میمونی. رفتم که خار پای کشم محمل نهان شد از نظر یک لحظه غافل از انشاح شدم و صد سال نهان دور فتاد اینجا جایی که اگر مشغول خودت شدی یک لحظه من گفتی صد سال از دوست عقب میمونی اگر تو ندوی هستن کسایی که بدوان اگر تو خدا رو نخوای الله داره کسانی که به سمت او حرکت بکنن من یرطد من کم دینه فسوف یعت الله فصوف بلا فاصله الله عاشقان پاک بازی رو پیدا میکنه که شعار زندگی اونها يحبهم و, يحب هم و الله با اونا محبت میکنه اونا با خدا محبت میکنن اگر تو در این عاصل نقش یوسف رو بازی نکنی و اگر امروز تو تمام حیط ها و به بتمام زمینهای گناه معاد الله نگی خدا پیدا میکنه یوسف هایی رو در دل اروپا خدا پیدا میکنه مسلمان هایی رو در قلب امریکا که برای خدا زندگی میکنه مطلبی رو من جای خوندم جوانی مسلمان میشه تو قلب اروپا تو یک جمعی بزرگی با یک باورهایی با یک حسن نیتی به سمت اسلام راقب شده دل به خدا داده برای خدا داره زندگی میکنه تجربه ایمانی کوتاه مدتی داره تازه مسلمان شده اما وقتی که تو جامعه مسلمان ها میاد برخلاف اون چیزی که از اسلام سراغ داره خیلی چیزهای غلطی رو تو این جامعه میبینه او آمده تو جامعه مسلمان ها که اهل بعد ببینه و آمده تو جامعه مسلمان ها که جوانهایی رو ببینه که شبهاشون با گریه در مقابل خدا صوب میشه و آمده جوانهایی رو ببینه اداره او ذکر الله که چهرشون تابلوی محبت خدا شده او رو میبینی الله یاد میاد و آمده جامعه رو ببینه که اگر حوث میکنن با خدا حرف بزنن نماز میخونن و اگر حوث کنن خدا با اونا حرف بزن قرآن میخونن و آمدی توی یک جامعه ای که تو این جامعه محبوب شبه های اونها محرم راز اونها تو نیمه های صد الله ها و آمده توی یک جامعه ای افرادی رو ببینه که عاشق نبی ان پروانه های پروانگان شمع نبوتان دلدادگان و دل شیفتگان به تاجدار مدینان اما وقتی که تو جامعه مسلمان ها میاد این چیز رو نمیبینه اسلامی که تو کتاباست اسلامی که تو مقاله هاست اسلامی که تو سایت اسلامی که در قالب پوسترها به در و دیوار چسبیده این نمود عملی نداره اگر داره خیلی کمرنگ داره تعجب میکنه خطاب به جمعی از مسلمان ها میگه با چشمانی عشق و صدای لرزان خوب شد قبل از اینکه شما رو بشناسم اسلام رو شناخت. من اگر میخواستم از روی مسلمان ها اسلام رو بشناسم من اگر میخواستم از روی امتیان نبی نبی رو بشناسم دین گریز میشدم دین ستیز میشدم معاند میشدم و از اسلام فراری میشدم به تعبیر علام اقبال نه از کسی نه از خیش چرا اینقدر از دیگران بنالیم چرا اینقدر از تنگ نظری ها و از کتا فکری های یهود و را نسبت به نبی خودمون بنالیم چرا از خودم نمیلالم که من شبه من سبقه الهی نداره شبه من رنگ خدایی نداره چرا از خودم ننالم که زبانم درود بر نبی فراموش کرده قلب من سوز نبی فراموش کرده سینه من اون داغهایی که نبی با بعثت خودش میخواست بر سینه ها اون سینه ها از این سوز ها خالی شده ای تو هی از شوق و ذوق و سوز و درد می شناسی ما با ما چه کرد میدونی این عصر و زبانه با این همه مفاسد با این همه حجمه های تبلیقاتی مسموم یهود و نصارا با ما چه کرد میدونید چی واحد دست دادیم میدونید چه بلایی سرمون در آمد می تو این جنگ فرهنگی و ناتوی فرهنگی ما چیو باختیم؟ ای از شوق ذوق و السود و درد می شناسی عصر ما با ما چه کرد اصر ما ما را ز ما بیگانه کرد اصل ما ما را از رشادت های خالد ابن ولید از غیرت خالد ابن ولید ما را بیگانه کرد اصر ما ما را از شب گریهای نیمه شب عمر ما را بیگانه کرد عصر ما ما را از فریاد صدیقی عیون قصدین و علی حی بیگانه کرد اصر ما ما رو از اون سوزهای دل صحابه بیگانه کرد از ما یک افرادی رو ساخت فاقد اون حس و فاقد اون آرمنخایی هایی که در صدر اسلام بوده میشناسی اصر ما با ما چه کرد اصر ما ما را زما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد تو صدر اسلام کافی بود که رحمتون نگاه خودش رو از یک صحابه بگیره تنبیه همین بود، با دره نبی ما، با دره نبی ماش تنبیه نمیکرد، شلاغ دست نداشت که صحابه رو تنبیه بکنه، صحابه رو با زندانها و طبعیدها، صحابه رو تنبیه نمیکرد، موقعی که میخواست یک صحابه رو از یک کردهی و از یک فعلی که خوشش نیامده تنبیه کنه، فقط بهش نگاه نمیکرد. چرا نبی به من نگاه نمیکنه، چرا نبی جواب سلام منو امروز نمیده. اون جامعه اون زمان می دونستن محبوب این جامعه مطلوب این جامعه قلب تپنده این جامعه روحی که بر این جامعه حاکمه محبت نبی هست و بزرگترین تنبیه در اون زمان این بود که رسول باک علیه السلام به یکی نگاه به یکی سلام نکنه و جواب سلام یکی رو نده دنیا با همه وسعت براشون تنگ می شد از خودشون بیزار می شدم. از نگاه مصطفی محروم شدم از جمال مصطفی محروم شدم میشناسی شناسی ما با ما چه کرد اصر ما ما را ما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد امروز چقدر کارهایی رو داریم انجام میدیم و فکر نمیکنیم شاید روح نبی ما آذرده بشه شاید از شفاعت کبرای نبی خودمون محروم بشیم شاید روی دیدن نبی رو تو میدان محشر نداشته باشیم شاید دین خودمون رو نسبت به دین نبی خودمون عدا نکرده باشیم چرا اینو از ما گرفتن دوستان من اون چیزی که این جامعه رو متحول میکنه و این جامعه رو به مدینه فاضله نزدیک میکنه و یک جامعه آرمانی میکنه اینه که نفسانیتها از جامعه ما بره شهوات از جامعه ما بره هر فردی که زمینه گناه برش فراهم میشه یوسف وار از اینها فرار کنه من گفتم میدان میدان مجاهده است خدا میگه و فی ذالک فلی تنافس فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سبقت گرفتان فِرُوا إِلَى اللَّهِ فرار و جهادوا فی لای حق جهاد خوب جهاد کنید اون طور که حق مجاهده است حق جنّت ساریه میدان اینو میخواد این جای بزدل‌ها نیست جای کسایی که بر هر مردار و لاشی پر کشیدن جای اینا نیست جای رقابت الله چه زیبات میکنه صحنه ای که یوسف از حسن زلیخا فرار میکنه یوسف نمیخواد تیر زهراگین شیطان به چشمش اصابت بکنه ان ندر سحمم من سهام ابلیس مسموم یوسف از این تیر زهراگین داره فرار میکنه این تیر زهراگین اگر به چشمم سرایت بکنه حلاوت ایمانم امید و الزر. حیات تیم ازم میگیره لذت سجده های نیم شب ازم میگیره من اینا رو نمیخوام زندانت میکنم رب رب فریاد رب خواهی اصحاب کهف چه گفتم موقعی که نقشه های و نقشه تنعم جلوی راشون آمد میخواد زنجیر دست و پاشون بشه گفت ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذن شططا یکی دا آمدن بیخ گوششون گفتن آقا تو این خفقان تو این جب تو این فضا اگر آمدید و تبقی این روال قلط جامعه زندگی نکردید تسلیم نشدید در مقابل مفاصد این جامعه زن از دست میرید بچه از دست میرید سروت دست میدید راحتی از دست میدید آسایش از دست میدید اونا چی گفتن ربنا رب السماوات والارض اون ذاتی که آسمان و زمین رو داره اداره میکنه پربرشتانده تمام این نظام حستیه محاف نفر از ما آجز شده ما رو نمیتونه پرورش بده بلند شدن و فریاد زدن ربنا آتنا ملدون کرحمه وحیئ لنا من امرنا رشدا فریاد رب یوسف از فساد و فحشا فرار میکنه و رب میگه رب سجن و احب من ما مما یدعوننی الی خدایا اینو منو از زندان میترسونن اینو منو از اون تنگنا و اون ظلمت زندان میترسونن اما خدایا اون آزادی کتون آزادی قربت تو نباشه وصال تو نباشه هم کلامی تو نباشه دلدادن به تو نباشه قل و زنجیر زندان بر اون عرجهیت داره زندگی صحابه رو نگاه کنید لازم نبود بعد از یک لغزش بعد از یک خطا کسی اونها رو دستبند بزنه لازم نبود به داروغه و شرطه تا اونها رو دستگیر بکنه به اون محکمه عادل بیاره خودشون میامده تحرنه یا رسول الله یا رسول الله منو پاک من نمیتونم دوری خدا رو تحمل کنم من نمیتونم ناراضگی و خشم خدا رو تحمل کنم من چیز بزرگی از دست دادم من با این لذت حرام خدا رو دست دادم منو پاک کنم منو شایسته درگاه خدا کنم ممکنه سنگ بشی اینو به جان میخرم دوری خدا سخت تره بدنامی زمان است. اینو تحمل میتونم بکنم. اون روزی که در حضور انبیاء و اولیاء بدنام بشم و گفته بشم اون روز جز مجرما بلند نشم. جز محرم رازها بلند بشه. حاضرم اینا رو به جان بخارم. خودشون تسلیم بودن. ابو لباب خطا کرده. خودش آمده به مسجد به ستون خودشو بسته. اون رو تو مسجد النبی این ستون رو ما می‌بینیم، استوانه ابولباده، یادگار یک صحابه چرا این ستون محترم شده؟ چون عشقی چکیده شده تاش. چون آه از این ستون به سمت آسمان ملند شده چون این این ستون محل صلوح محل اشک یک بنده خدا با خدا بوده یکی عسیر عشق خدا شده اینجا یکی زنجیر محبت خدا به پا بسته اینجا این ستون انقدر امروز با قیمت شده محدث با ما مفسر معلبه با ما آرزو میکنه برکت نواز جایی که اشک ابوالباب چکیده اشک منم بچکه و اون نگاهی که خدا بر این فکه زمین کرده دو مرتبه سایه من هم از آن زنجیر زلت دلبرم گر دو زنجیر آری بر اینا کسایی بودند که زنجیر قصر رو دریدن و پاره کردن زنجیر امپراتوری‌های روم رو و ایران رو دریدن و پاره کردن زنجیر استبداد رو زنجیر استثمار رو زنجیر فسق فجور رو از عالم دریدند و در مقابل هیچ زنجیر استبدادی تسلیم نشدن سرشون جلوی هیچ پادشای شد اما چه شده که امروز خودش یک زنجیر دور خودش بیچیده قیرزان زنجیر زلف الدل برم گرد دوسط زنجیر آری بردرم این همون ابو لبابیه که عشد علی الالکفاره این همون ابو لبابیه که عزتن علالکافرینه این همون ابو لبابیه که قیصرها و کسراها دو لغزه بر اندامند چی شده؟ چرا خود تو به این ستون بستی؟ الله ناراضه خطا کردم خودم رو به ستون خانش بستم تا به من نگاه کنه کیا مج پر نظر دالی جائیگی؟ کیا مج پر نظر ندالی جائیگی؟ کیا میری فریاد خالی جائیگی؟ خدا نمیخواد به من یک نگاه بکنه؟ اون ذاتی که نبیش میگه کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون اون ذاتی که منتظر توبه نشه و بنده خطاء خودش رو عفو میکنه نمیخواد فریاد منو بشنوه اون خدایی که بسگ اصحاب کف کنار یک جمع ایمانی نگاه کرد و همون سگ رو در کنار این جمع ایمانی یاد کرد اینا هفت نفرند اما و کلبهم باستون درائی ها بالوسیل یک, یک چیزی دیگم کنارشونه اونم من دیدم چی؟ سگ رو هم من دیدم سگم کنار این جمع ایمانی با عرض شد خدایی که به سگ کنار جمع ایمانی نگاه میکنه خدایی که قدم سگ رو نمیگذار رایگان حدر بره کنار جمع های ایمانی اون خدا حتما نگاه میکنه عشق منو تو این خلوت رجلون بکر الله خالی ففات عینام. تو این خلوتم برای خدا اشکی دارم چون میدونم خدا عشق دوست داره. میدونم خدا به من نگاه میکنه. میدونم خدا فریاد منو میشنوه اون ذاتی که خودش داره به بندش ربنا یاد میده. اون خدا خدایی که به آدم میگه فطلقا آدم و من ربیه کلمات كلمات رو استقبال آدم مفرسته تلقيه كلمات ميكونة تو مقام فراغ تو مقام بعد تو مقام هجران كلمات تو مقام هجران ميشه بعد ميشه تلقيه كلمات خدا ميكون اين كلمات حديث يتمي هم أكفت بكانه ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خسران دوری تو آدم از فراغ بهش گریه نمیکرد از فراغ نعمتهای بهش گریه نمیکرد آدم دوری خدا را نمیتون تحمل بکنه آدمیتش و فطرت درونش اونو تکان میده آنان که فرزندان خاص آدمن نعرهای ربنا ظلم نامیده صحبت مین دوستان من دو میدان میدان رقابت با نفست باید این گیر و دار رو داشته باشی این درائی که یوسف سر اون قرار گرفته بود باید یکی رو انتخاب می‌کرد، به یک سمت فرار می‌کرد. سر راه من تو هم تو زندگی گذاشته میشه بارها بار وحد ایناه النجدین فعل و تقواه این مسیر تقواه و مسیر فجور برای همه همواره کدوم طرف داریم میریم و توقع داریم منزل مقصود ما کجا باشه الله سبحانه وتعالی ترسیم میکنه این شتاب این دویدن این تند رفتن یوسف را خودش رو به درهای در بسته برسونه یوسف درها بسته است خود دیدی بسته است چرا داریم بیدوی؟ کار من دویدنه کار من اینه که چیزی که در توان منه چیزی که در وصع منه به خدای خودم نشون بدن من مسئول وظیفه‌ام من مسئول نتیجه نیستم فاعل حقیقی خداست من میدمم تا دویدن به خدا نشون بده من از زمینه فساد فرار می‌کنم من از جایی که دایره گناه فرار می‌کنم ببینید دوستان دو من ولا تقربوا الزنا الله زبان و تعالی میگه تلك حدود الله فلا تقربوها همون طور که گناه نزدیک شدن به گناه هم گناهه و کسی که از زمینه های گناه فرار نمیکنه کسی که از مقدمات گناه فرار نمیکنه کسی که از محیط های فاسد فرار نمیکنه کسی که از دوستان ناباب فرار نمیکنه کسی که از حیطلک های مفاسد اجتماعی و شبکه های مجازی فرار نمیکنه میگه من به خودم مطمئنم این شکست میخوره چون پایان این قصه خدا رمز موفقیت یوسف رو این طور بیان میکنه قدرت یوسف میگه امتحان خوب پشت سر گذارنده ویست گرفته ترمش خوب پاس کرده بنده مقرب درگاه خدا شده حالا یک گوشه نشسته و پشت سرش داره نگاه میکنه میگه من نکردم توان من نبود، استعداد من نبوز اگر من تکیه به این نفس میکردم شکست میخورده. من نباید نفس خودمو تبرئه کنم و من نباد اینو از کمال ذاتی خودم بفهمم فوری چی میگه و ما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي این حاصل رحم رب من بود این حاصل فضل رب من بود از من نبود امروز تو جامعه ما خیلی افراد هستن به خودشون به نفسشون مطمئن میشن چرا چرا کنار منقل و فور نشستی چرا کنار معتادا نشستی؟ من به خودم مطمئنم من طوری کنار اینا میشینم گرفتار نشم چشمهای بعد میبینی یکی مثل این نشه. چرا کنار سیدی مبتدن نشستی؟ چرا... چرا کنار این محیط فاسد نشستی؟ چرا آذر نیستی از این زمینه های گناه فرار کنی؟ من به خودم مطمئنم چشمم پاکه دلم صافه فرار کردن از زمینه فساد و گناه سنت یوسفه گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوسف وار میباید دوید بعضی هستن سستن و تنبلن میشینن سرجاشون میگه جامعه پروفساد شده جامعه پر زمینه گناه شده تمام جامعه رو تباری گرفته هر طرف جامعه گناه و گناه دیگه راه نجاتی نیست فقط یاد دارن مرثیه سرایی کنن فقط یاد دارن با کلماتی دینی بازی کنن و مقدس معابی خودشون رو به مردم، به رخ مردم بکشن. اما همین افراد می‌بینی، به جای این که خیره یوسف وار باید فرار کنن، فرار نمی‌کنن. خودشون کنار سیری مبتزل نشستن، به مردم دارن میگن واه واه جامعه فاسد شده. خودش کنار دوستان نواب نشسته به مردم داره میگه جامعه پرست تباهی و بربادی شده. تو درست باش تو عوض شد، تو تغییر کن. تو به سمت درهای در فرار کن تو این بخش اول آیه رو تکمیل کن جایی که معمولیت تو در دنیاست والذین ولدین جاهد و فینا تو این مجاهده رو تا نشون دادی تو دویدی به سمت درهای دربسته الله الله دوستان من به خدا درها باز میشه به شرطی من بدوم به خدا سنگها از دم راه ها برداشته میشه به شرطی که من از مفاسد فرار کنم. توی این حدیثی هست مشهور به حدیث غار. سه نفر توی قاری توی طوفانی و توی تندبادی باران شدیدی به یک قار پناهنده میشن سنگ بزرگی میاد دهانه قار رو کاملا میگیره. هیچکی از اینا خبر نداره. و این قار برای اینها غبرستان میشه. پریادرسی براشون نیست. داد بذارن که صداشون رو نمیشنوه. و... با هیچ وسیله هم نمیتونن خودشون رو خلاص بکنن یکی تو اینا میگه امروز میتونه ما رو صدق و راستی و درستی ما رو از اینجا نجات بده بیایم متوصل به اعمال خودمون بشی رسول پاک داره به ما نشون میده اگر توی تو صدق باشه راستی و درستی باشه مثل یوسف فرار کنی درابازن خدا گفته بلدین جاهد و فینا اونایی که در راه ما مجاهده میکنن لنحدین هم صبولنا یک راه نه سبیلنا نه سبولنا همه راه بازه به شرطی تو در میدان مجاهده باشی از این غافله هایی که بر درها زده متعصر نباش از این فضایی که تو رو سر جان نشنده و میگه بشین نمیشه از این متأثر نشو تو حرکت بکن اونی که در رو برای یوسف باز کرد برای تو هم باز میکنه یک در نه و قلقت الابواب. اینا درای زیادی بود کی رو باز کرد تو قاریگیر کردن امروز چیزی که ما رو میتونه از این مخمسه خلاص کنه صدق نواست چیزی که صحابه رو تو جنگ بدر خلاص کرد شمشیرشون نبود جمعیتشون نبود صدقشون بود استسقیسون ربکم فستجابلکم اینا اهل استقاسن اگر سپاه ابو جهل اهل میگساری و رقاسی و, و شرابخاریان اهل مفاسدن اما اینا اهل دعان اینا شواشون با خدا صد میشه سنگدای بزرگ سر راه را صدق و راستی جوان بر میداره به خدا شک نکن یکی یک سر جاش نشسته به دوردست ها خیره شده یک خطای چشم به وجود میاد به دوردست خیره شده چرا نمیری داری از گرسنگی تشنگی میمیری صد رمق کن حرکت کن نمیبینی اونجا شاید تو بیابان تجربه کرده باشی تو بیابان که keresztین به دوردست خیره شدیم نگاه می به دوردست آسمان به زمین چسبیده. یک خطای چشمه. بمبسته اونجا. وقتی اونجا بمبسته چرا برم؟ بمبست نیست. تویی که نشدسی بمبسته. تویی ای که اینجا سر جا دسته به تنبلی میذاری برای تو بمبسته. همه درها بسته است. سنگا جلوی راهه. اما کسی که حرکت بکنه به خدا راه براش بازه. در چه رخنه نیست آلم را پدید. خیره یوسف وار می باید تفیز. فرار کنیم اگر باز نشد اگر سنگا برداشته نشد بعد از خودمون گل کنیم تو قارنش نشستن متوصل به اعمالمون بشیم یکی میگه من پدر و مادر پیری داشتم اکرام و اعزادشون زیاد کردم تا اونا رو سیر نمی کردم حدیث دولانی مفهومش من میگم تا اونا سیر نمی شدن من زن و بچه خودم رو سیر نمی کردم مطمئن می شدم اونا سیرن بعد میرفتم لقمه تو دهن بچم میگذاشتم خدایا یک شبی اومدم دیدم پدر و مادر خوابن دلم نیامد بیدارشون بکنم گفتم اگر برم ممکنه گرسنه بخوابن کنارشون تا صبح نشستم با همون خستگی ها تا پدر و مادر بیدار شدن و غذا بهشون تقدیم کردم اونا که خوردن مطمئن شدم رفتم خوابیدم خدایا این عمل رو تا امروز هیچکی غیر از من و تو نفهمید اگر این توش سرق بوده و برای تو بوده من از این مخمس خلاش یک خورده سنگ میره کنار فقط راه تنفس باز میشه نفر دوم صدقی که در معاملات داره این صدق داره در معاشرات صدق معاشرات با پدر و مادر رو داره عرضه میکنه به درگاه خدا این صدق داره تو معاملات صدق خودش تو معاملات عرضه میکنه خدایا من یک کارگری داشتم شم کار میکردم. مزدی داشت نگرف رفت من مزدشو بعد از اون نتانا توش خیانت نکردم بلکه روزی که آمد نتانها اون چیزی که تو دست من بود بهش دادم ربش اون رو و فایده اون رو هم بش دادم باورش نمیشد. من اومدم فقط همون دست مزدم رو بگیرم من بهش گفتم تو این مدتی که تو نبودی اینو من به کاری زدم از طرف تو مزاربه کردم اینا فایده ای تو شده بیا اینا مال تو اینا رو نفر اول دوم صدق در معامله سنگ یکم کنار رفت روزنی آمد نور خورشید آمد نفر سوم گفت من چی بگم کارنامه زندگی ما برق بزنم چی دارم به درگاه خدا پیش بکنم چه صدقی چه راستی چه درستی, چه درستی رو با خدا پیش بکنم صدق در اخلاقیات صدق در شهوات کنترل شهوات این رو به درگاه خدا عرضه کرد گفت خدایا زنی یک زمان از من مبلغی خاص دختر اموی من بود حسین جمیل خیلی من شیفتش بودم از من پول خاص نتونست برگردونه من اون رو دعوت به فساد دادم دعوت به فحشاد دادم همه زمینه فساد فراهم شد من دیگه چند قدم بیشتر با فساد فاصله نداشتم اون زن به من گفت اتقی الله هیچ کی دیگه اینجا نیست نه دوربینی اینجا نه چشمی اینجا نه کسی اینجا که از شرم بکنی اما پسرم از خدا بترس تا اینو گفت من لرزیدم و دست از این فساد کشیدم خدای اگر این برای تو بوده من از این مخمسه خلاص کن سنگ کنار را همه آمدن بیرون امروز چرا سنگای مسیر زندگی ما دور نمیشه و من یتق الله یجال الله مخرجم با تقوا سنگا برداشته میشه با تقوا درای در بسته باز میشه با تقوا فرشته های بدر این میان امروز دونا میخوان جامعه ما رو جامعه فاسد کنن جامعه که شایستگی نصرت خدا نداشته باشه جامعه ای که چشم چران باشه جامعه که حوسران باشه جامعه که شبهاشون مثل شب اهل بد باشه جامعه که روزشون اون غیرت های دینی و اون شهامت ها توشون ماج نزنه جمع ایمانی قشنگ هیچ هیچکی اینجا جمع نشده برای یک هدف دنیاوی و مادی هیچکی جمع نشده اینجا برای اینکه اینجا وعده دنیوی به کسی داده باشه هیچکی اینجا جمع نشده برای اهداف سیاسی زنده‌باد و بر برای کسی بگیم آمدیم از این جمع ایمانی ایمان ببریم باوریم تعلق با خدا ببریم همه ما انشالله تو این جمع ایمانی با الله سال کنیم نداری چقدر قشنگ میشه که تو اعماق وجود خودش بدون این که زبانت تکان حتی بخوره ای خدا بن ما تو جان را ان مقام کن برو بی حرف می رویت کلام زبان عشق زبان بین المللیه زبان عشق زبانیه که گنگم میتونه باش حرف بزنه زبان عشق زبانیه زبان زبان که ملیت و قومیت نمیشناسه تو این جمع ما دوستان کردند دوستان ترکمنن دوستان بلوچن دوستایی از فارس هستن دوستایی از جای یک نمود ایمانی قشنگه تعد قشنگه بدون جملات بدون کلمات در اعماق وجود خودمون با خدای خودمون سال کنیم همین الان هیچکی نمیفهمه یک صدقی رو به خدا نشون بدیم ته دل هممون توبه کنیم منم توبه میکنم همینجا در محظر همه شما سروران و شما هم میخوام که انشاءالله تعالی توبه بکنیم و تائب و حبیب الله کسی که توبه میکنه دوست خدا میشه ان الله یحید به طبابین الله توبه فزیران رو دوست داره و دوستان من سعی بکنی در زمینهای فساد از دوستان ناباب از جایی که مقدمی گناه هست از اونجا فرار بکنیم و خود به نفس اعتماد نکنیم همونطور که یوسف اعتماد نکرد و انشاءالله تعالی جامعی درست بکنیم که شایسته نصرت الله باشه. و آخر دعوانان الحمد لله رب العالم.